ریچل دوشنبه دو جولای 2013 عصر حالا پیش اونم خیلی زد زجر و ورمه. از عاقبتش خبر ندارم. چیزی به سقوط نمونده اما فعلا آرامش قبل از طوفانه. هیچ کاری نمیتونم بکنم. امروز صبح خیلی سرحال بودم. قبل از اینکه اون حس وحشت بیاد سراغم، فقط چیزی رو که باید ازش بترسم نمیشناختم. نه. اسکو ترس نداره. وقتی منو کشید توی خونه باید وحشتو توی چشام دیده باشه چون بلافاصله ولم کرد با نگاه وحشی و سر صورت جولیده انگار از نور میترسید و در رو روی هر دو تامون بست شما اینجا چی کار می‌کنین عکاسا روزنامه‌نگارا همه جا هستن من نمیخوام مردم بیان پشت در نمیخوام اینجا بپلکن اون یه چیزایی میان که به تکوتا میافتن هر کاری ازشون برمیاد عکس گیرن چیز گفتم هیش اینجا نیست هرچان حرفم در واقع صادقانه نبود شاید کسایی اون اطراف تو ماشین نشسته بودن منتظر یه اتفاق دوباره پرسید اینجا چیکار میکنین؟ من شنیدم که از تو اخبار من فقط میخواستم اونه یعنی دستگیرش کردن سر داد بله امروز صبح زود اون یرو رابط خانواده اینجا بود اومده بود با من حرف بزنه اما نمیتونست دلیلشو نمیگن باید چیزی پیدا کرده باشن اما به هم نمیگن چی هرشان این کار برای مگان نیست من میدونم که اونا مگان رو پیدا نمیکنن. کنن نشست روی ها و دستاشو بغل کرد تمام بدنش میدرزی من نمیتونم همینجوری منتظر بمونم نمیتونم منتظر بشم تا تلفن زنگ بخوره وقتی تلفن زنگ میخوره چی میشه؟ یعنی بدتر خبره این و کم کم تو خودش فرو رفت بعدش بالا رو نگاه کرد انگار تازه داشت منو میدید شما چرا اومدین؟ میخواستم فکر کردم شما نمیخواین تنها باشین به من نگاه کرد انگار که من دیوونه باشم گفت من تنها نیستم و بلند شد و حال داد تو اتاق نشیمن برای یه لحظه فقط همونجور اونجا موندم نمیدونستم پشت سرم اومده یا نه اما بعد یه صداشو شنیدم یا قهوه میخواین یه زنی بیرون رو تمنّا بود داشت سیگار میکشید قد بلند با موهای جوگندمی شیک لباس پوشیده بود شلوار مشکی و بلوز سفید یقه اسکی بالا و پایین حیاتو قدم میزد اما به محض اینکه نگاش با من تلاقی کرد بایست. سیگارش انداخت روی سنگاوو زیر زیر پنجهای کرد وقتی وارد آشپزخونه شد بشتک از پرسید پلیس اسکات گفت این ریچل واتسون مامان خانومی که به آبداک بام صحبت کرده بود آروم تکون داد انگار توضیح اسکات واقعا بهش کمک کرد من پذیرفت تند و تند به هم ظل میزد از سر تا پا و دوباره من فقط اومدم تا دلیل قانع کنندهای برای اونجا بودن نداشتم نمیتونستم بگم فقط می خواستم بدونم چه خبره یا می‌خواستم سر بزنم خب اسکات از شما خیلی ممنونه که قدمی براش برداشتین حالا دیگه منتظریم ببینیم چی پیش میاد یه قدم به سمتش برداشت آرنجمو گرفت و آروم آروم بردم جلوی در به اسکات نگاه کردم اما اون حواسش بهم نبود نگاش میخ شده بود به یه جای بیرون پنجره سمت خطا هم. از شما به خاطر این ملاقات کوتاه ممنونم خانم با تون. ما واقعا خیلی از شما ممنونیم. یو دیدم پشت درم. پشت در بسته. دری که محکم پشت سرم بسته شده بود و تا سرمو بلند کردم اونا رو دیدم. تام که داشت کالسگره حل میداد و آنا هم کنارش. <تصفح> تا چششون افتاد به هم وحشت زده بای آنا آنها دستش رو گرفت جلوی دهنش رو زودی خم شد و بچه بغل کرد. شیر ماده از طول شیرش محافظت میکرد. آسمش بخنم و بهش بگم. به خاطر تو نیست که اینجا. دختر چندانم برای من جالب نیست. من تیپا خورده اسکاتم. مادر اسکات خیلی روشن بیرونم کرد. تیپا خورده و ناامیدم اما این همیتی نداره چون اونا کمال آبدایک و دارن. اونا گرفتنشو من کمک کردم من آره من تونستم کاری رو انجام بدم اونا گرفتنشو حالا دیگه تا پیدا کردن مگان و آوردنش به خونه چیز زیادی نمونده